المولا رحمان الرحيم ذو الجلال <تصفيق> الذي أنزلت فيه القرآن <الغرقى> وافتراب <فضل> عزال عباد جيد صل على محمد وآل محمد وجئني الفرج اليوم وارزقني الجبيد جلرا في آمِن آذَى وفي كل آه، وغفر لي تلك الجلوب العذاب. لانه فإن لا يغبر تغير يا رحمان ويا الله ربي ربي ربي, ربي, ربي Rabbi Rabbi Rabbi Rabbi Rabbi Rabbi Rabbi Rabbi Rabbir, Rabbir, Rabbir, Rabbir, دم در کارجا و نگاه می از ازمار رو می کنم قنونت برم و داد بشم مولای من بعد باید خودتو معرفی کنی حالا من معرفی می کنم هرگی هم نامون هم عنوان ولی با من هم ای خدا بر جرم و تقصیر ای خدا بر جرمت زیاد سیر آمد بر گناه جش دزان جی کاش با جو از این بودم رفیق آخه میبینم رفقا جا به جردویل میگیری می صدر مجلس مهمونید مال اونات اون بالا بالا جرد همه ی آقایی رو میبیند بی چگی زوادس بروی جان اجرید ما زمه بولهندی در صورت نورانی ابروالش باری جه آقای روی گونه راس یه خاله ها شمی داره کاش ملم یه جا جنارش داشده نمیشه با این همه خوبا جایی برا من نمیونه اما لا غلیل خواهشم رو برا ورد کن اجازه بده ازید دور دوران میگاش کنن کاش با تو پیش ازید بودم رفیق، ای خدا دیر رامده، دیر آمدن. ای خدا دیر رامده، دیر حالا رو زمینه مأسیت خال خرابم کرده است قافل از روز حسابم کرده است ای خدای من به فریادم برم بین چه جای کرده از مولا جا مولا جا من ذرا با رحمت بشناخ ایش را در دامند انداخده هرچه زرمایه به من دادی خدا های های های های, های. هرچه زرمایه به من دادی خدا در جوانی جنگیرا را باخده. بغدم من جدایم ای جریم آقای من من فقیرم این علامت اصلا من کارجم کجا بوده من میخواب بودی مهمونی گدایی کنم من فقیرم این علامدهای من دست خالی روی زرد و عشق غم نی بده مولای ما بیا با مولا خیران من جمی دالم تو از دی لی لجم خود بیا اسباد کو مہدیہ جب ابلے حنوں خیلی شود نشده شب اولو و ملی جوری اسم میذارم شب سفره خودمون یا وخواد ما شوا دیگه خادما جمعزر میرسد امشب مال خودمون امشب مال خود شب القدر به نوکرانی ده شبا دیگه گله نکنن نگن به ما نرسید مهدی امشب بزن بر ما سری، خود به نام مادره dari Fatimah Fatimah Fatimah Hai hai hai Fatimah پس من فاتمی از این آب روز بخونم از نخست تن دگی هر جز نمیشد باهره چه <تصفيق> شود این خان روزی قطلگاه همسرم شب اول و با امول احم جروع کرد با مس در جروگو با زهرا جروگو روز چند ها ایجه یک نفر نفریا نبود دیدم این جا پش در او. sadat allah ya varab paajme ya paweem ya majdestaba paajme paajme ya, paweem ya یا بادمه او مرا می خالد و آن روز دستم بسته بود کاش آل جان جالمت می شد برود از بگرد هرچه دشمن خواست او را زاد زد, زد, زد بر ندارم دست آن از دفاع شوهرم هرچی که ما این شبا بخونیم نیت اینه هم خودمون هم از قبل و رب رب امباد جدا از در گردن ما به سلام از سلام نشونه ایم. او جین چه خدا شما رو اهل کرامت قرار داده اینه و جعلتم فيه من اهل کرامت الله و ودیتم فيه لا الله و جعلتم فيه من اهل کرامت الله اینه جه دونه از خونه هاش که به نام جریمه مدینه از جمع ذکر ده شباب بلا بنا ن با, با مجلسو آیا وند دل به غادج در روزه بخونم همه بیوانه امجاب چه جاب خود دنیا از میخم بهجری نه ملاج دارو بخونم هر جهت برا ما رمزان گفته نشده بشه که چه آجاده هر وقت حضور قلبه گفتن بخونی بسم الله الرحمن الرحیم چی میخواه بخونی؟ اللهم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فراجاره چرا ایمون آجاده؟ آخه این شب شب خمینیه <تصفيق> <تصفيق> شب دوازده او بخمنه تو تمام زندگی از جاگه داشت بپرزیم میگردیم مناجاتو بیشتر از همه مناجاتو دوست داشته اللهم صلّ على محمد و علي محمد و جن فرا جوم کلا زر شل بناي جنب جنب نيمده دل بيزوده جا بزياد شل خاليه یه لغمه قضا میخوری میگی فلانی هم دوست داج کاش بود الان همه رو یاد کن شهدا همه همه همه پدر مادر یادت نره و اسمه و از من دایی و از من دایی جور خودت گفتی بیام و مده وگر نه من اصلاً به تو نمیخورم <تصفح> ما زندم نمیاد آگ من کجا دو کجا خودت گفتی آلا باید گوش بدی باید گوش بدی باید گوش بدی یه <تصفيق> سال منتظر شبه و زمان دایی ای ایوالا دایی ای تو مند و اغبیلالایی ایوالا ای جایی توی قربست دیگه بداد کرد شب اول خدا من منم بشیرم گریه کنم گریه کنم خودم علتم بی جار درم بشیری زبودی ها نگال کن به فقط عرب و وقف زباين يدايك مزدكيلا لك مزبر الىك رضي الله تغبر ها جدید و دارم و فمیمی بدونی توی دلم شخبری و لا یقبال ای کب امرم قلبی و مفوای و ما ارید آل عبد مَن مار و از و اول بئی مِل بر جون و جرات مقادير جام علي يا سيدي فيما يكون ملئ إلى آخر عمرني من زرير ديب و علالیتی تو میدونی بردا و بردام چه گلاهی قرار از من زمین آی خودم توی مالم زوری نزا خرامگاری گلم شیل مارم از دنیا یک کار گرمت به جناله بزنم وقت جرأت مگان جلایی یاد یا زایدیم فی یا ال آخره سری رده و علاییه و بین دیجاه دست خودت دست خودت هر کار بخواهی بگو دست جوی من بیش خوبات بیاب یا بر امداد زل و بم يد جاء لا بيد غاين الجاب زياده جي وانا بس جي وانا و من من ولق یاذابالون. اگه ظمه کنی کی به من روزی بده؟ و اگه چی Kababija, wahololo nzagadze, ek be mal gazab nakun, be na tajar lazab غای بفضل قابل تو آي كانيب لنا سي واج وجم بايل يا جاي ود فقل زمال تحلق که انم من آوردین جال شدیم نوازشم کنی بگی بخشیدم فقل زمال تحلق با تقامت تلیب امشب از دست فاطمه لباس مغبرت به دست ما بده بیبی گدالوازم خانوم بند پرورم و تغمد جلیب افید ان افوزه فمن من جب ظالم از غزت و این قدما آجالی، ولی میاد منی من جمالی، گرف خوچم و زاد در گردنیم، همین روزها زد رایل بیاد، اما عملم نتونست درون تو نزدیک فقط جعل جل اقرار به ذنب علی جوزیلی فقاهی راه داره قنایم اقرار به گناه رو وسیله قرار بد اره اره خودم جر من اون بدام من اون قناع إلهي قد جلت على نفسي في لها فلا المائي <الله> إلا هم تغذر لها خدايا بدون اسدم قناهم ومرتجب شدهم وای بر ما لا جن باب زی بر لن یزال ایام مهیایی دوست دارم؟ فلا دقت در رجالی ممادی خدایا دنیا همه مبل خوبی کردی دم مردمی خوبی از قد نجیب لایی جیثا یزمن نظر و الا خدایا از این که قیامت منو تحویل بگیریم ناؤنید نمیشم آخه تو دنیا خیلی عزت سرم گذاشتیم خیلی به من آب رو دادیم خیلی تو مردم برام حساب و جرگیم ا تاولمل مری ما انزعلان و خود عل یا به فونین گ مغملقدر غمر رو و جل خدایا ابسارگی گله گالا رو خودت به دست بگی اول خااه ج ماین باجمع؟ به ما کمک کن وضعی مهمونی رو به هم نزد خیلی بده اگر <متصفيق> ترمیت مهمونی رفتن شده خیلی مرمان. ساده نگیزن بگم کنیم مرد بزرگانو هنو قاشوق دست گرفتن و لطمان خوردن اجاد اگر اگر اگر خوشی خیلی بده یه که مثال یه خیلی در خیلی مهمه افضل توی ال و مهمترین کار اینه که گناه نکنی امشب فوت, فوت کاتگوری رو بخوام بگم ما که خودمون کاری بلد نیستیم کمک <تصفح> کنید ما رو که ما گناه <تصفح> نکنیم همین یه دنیا حاجت رو که بتونیم مو قرص محکم به برکت, برکت گناه براح نکردن براح دن دن. وقت, وقت چیزایی به نصیب بشه که یا یا کلای ذلل من امره وأذلني بفضل جلّه مُنّب غضّه ما له جلّه إلى قَدْ زَجَرْتَ لَهُمْ ذنوبًا في الدّنيا. و انا اوجه الازد را علی ملکف الاخران خدا یا دنیا گلام و دیدید اما ملاخرت خیلی مهداج درم <تصفيق> إلهي قد هز إليه إذ لبدو الإرهاب لأهد من عباد جز يوم القيامة على رؤوس یا مدملو بین مردم رسوانه کن قلائی جودون که بزرز عملی و افون که اولو من عمل بیا امشب تو افتو بیا بیا ملم گناهامو بیارم بذاریم ببینیم ملکی بیشتر ملکی بیشتر مل بود مل باید بار دیگری رو بگشه اگه گناه های ود بیشتر از عفت توز ولو بالا جریله عذاب از عذاب به من لازم گون اما اگه تو بیشترت گنایه ورم کرو چون گله زب به وج بابو و زرنی خدا گریه دادتر این جاش هم این جا روی این فرش و توی مسجد و زیر زد نمیشه خوب ازگرد من این جارو این که میخونم یادش یک سال و مانشه بود میابدن ستیغ بمون گلی شاک شبران معلوم بود بزیار و بلندیای کنار خیگنا می شدن شعبانیم خونده آتیش دشمن دیده می دی همه می دونستن عملیات نزدین که آل دیگه ای داشت مناجات خوددن هیچ کدومه ای مناجاتا من مزه اینجا رو برام نداره خیلی جوهدام کنار ما بودن شعید عبدانی یلی مرادی مهرامی او اینا می اومدن با موناجاج جعبانی اونجا مذبی دادی جوری با خدا حرف بزنی همین جبابم کل مهمودت بشن الائی و سردنی به لقائه یوم زغزی بین عباده بین خدای روزی ندا و مجرمات سواشت اونای جهل بادمه و علیت این طرف طرف بهش اما مجرمات رو ببریم طرف جهنم خدایا اون روز با من چی میکنی بلوبرا خودت سوا کن بلو برا خودت سوا کن بچه کچیت میاریم یه خود آزادش و وزیفه بچه کوچیک بازیه بزام کارش برسه تو بازی نکن تو این زبره ها رو بدون القریب این صورت رو خاک بذارم دیگه زدای ما به گوش گذی نرسه <تصفح> علایی اعتباری علایی جمع اعتبار و لا قبول عذره خواهش برسرم اگه معذرتمو قبول نکنی فقبل فقبل فقبل عذری عذری جبه بودام لادون بودام لبا بداو لبا بداو لبا بداو خلات رقبها يا, يا نظري يا أكرم من اعتبر إليه المسيءون إلهي لا تردها جزي ولا تخيب تمي ولا تقدیر جر جاهی و املی عرض مام خراب نگم مولا مولا مولا کار نداشتی چرا آوردی؟ ولاآرده تف دیه عدل مجازبی اگر میخواستی میتونستی خوابم کنی سلامو به مهمون و گرای دیگه گرم کنی چیکار داشتی منو بودی میدونم چا هم به من عادت کردی میدونم چا هم منو دوست داری ملائکه ناله و فریادشون بلد بشه میگن خدایا ای بنده که برای اجابت آماده کرده چرا جواب نمیدی چرا داشت و مزدجاب نمیگن خدا خدا میگه من ناله ای بنده رو دوست دارم بیتر جواب بدم بره دیگه بر نگردن اگه میدونی من از اونام که میرم و میاب نمیخوام آجت همو بدی. همین تطمیر تو بهتریل تطمیر ها تو موزا گریبی خودت میدونی چیگار کنی الای ما از اونگتر و یا جدل قدفنه تو امری ری تلمه خدا یاب با همه باور نمی کنم که یومی ازت خواستم به من ندید قرل تلت رجیده و الگلت دورت دیگر دا قربولت درا اے بعضی حواظنشون جای دیگه از نگنه چه حالا من باید پشت سر روشم جمعیت خوب کنترل داشته باشم تو دید. اما خب اینه بگم بعضی ها اینقدر مشکلاتشون زیاده تا تو جلس هم میشینه حال دیگران هم میبینه گریه دیگران هم میبینه سوزشون اما هی حالا نشسته وسوس حال یعنی چی؟ با سیگه یک حالا همین جریم هم هستیم بیدیر اصلا چرا این همین داد می چرا این ورش این چرا اون ورش اون چرا معلیس نجا؟ هی میره توی این عربون این معلیس داره تحمل می شه یعنی من تونست دوتا قطر اشم ارتباط شوه این اینا مصیبت هست یا باید دتونن غلبه کنم به این عرف یه وقت دوست, دوست انقدی بار گناه رو دل گرفته سیاه شده نمیذاره ارتباط بر براش خسوبردین هم یه فکر کنه حالا من نمیدونم دونم. نگی <تصفيق> کسی رو <تصفيق> <لوو>. گفت <تصفيق> علیه من این سویت اون کسی که بیشتر درد داره بیشتر داد میتونه برو بیمارستان بالا سر مریض در ماهینه میکنه ها اما تا صدا ناله یه مریض میاد داد میزنه پرستار رو صدا میزنه پرستار رو دیگر رو صدا میزنه ببینی هر چه باشه به این دکتر برم داره میارن این شبابت ناله بزنی در خونه خدا شبابت بگی من تعمل ای درد ندارم. نداره حالا درد درد گناه یا هلی درد درد فراغه که اگه باشه ای درد که نیست خیلی خوب هم اگه باشه یا اولیه بخشب همجوری آروم, آروم بشینی و... هی حالا چه جلسه تموم میشه؟ امشب خستم اینجوری نیا خب بعضی هایی شبش هم اینا شب اولی بگم همون نشستم خب خب امشب محال ندار همش دیگه گوشیم بشینم ایشالا زودتر هم تموم شما باحتیشم بریم اینا شیطون اگه اعتقاد به این جمله باشه بگین نه همه خسته تر هستن مریض تر فکر شا نمی‌کنم شاید توی جان من باشه شاید نمیگم یعنی با این سینه و با این صدا تا شد نشه تا اعتقاد به این لا حول ولا قوه الا بالله ال الی الی اگه الال این اعتقاد داری مو امتحان کردی و دیدی خدا رحمت کنه الله اکبر سال 66 بچه های خوبی که اهل مناجات احل بودن و بوی رو هدار میدادن ایک شو فلانی ای. فلان ای. کف خیلی ماند میگفت من هر وقت قصد تر از همیشه میایی در خون خدا ماند. نمیدونم چون جوریه, جوریه. همچی که یه خود مقدمات مناجات هم و حالا سجده ی درکت نمازی کار میکنم بیشتر از همیشه های میکنم بزن من, من که بلد نیستم و نمیتونم اونو طبع من جمع که اهل سهر و اهل نواز شما, شماً میدونم شبش شب شب بلند میشه بلند طرف اینجوری نیسته که همه که مثل مرحوم آمی جواد ملکه تبریزی نیستن که از تو برخت قاب که بلند شد میذر زیری گره میمد رو پله میزد زیری گریه میمد دمه شیر آب میزد زیری گریه وازمون میگرد اینقدر گریه میگرد تا یه وضع تمام شد درانه میخواست برگرده گریه قامت بود از گریه همهش گریه گریه همه اونجور نیستن که او یوم اینی درکت خونده دکت یازدام هم خونده هنوز تو گلوت هنده قتلش قطعهش نریخته هنوز هم خوابشه همه حالا دونه دونه اسم نیستن میخوای یاد بگیری خودت دوست داره یا, <تصفح> <تصفح> یا میخوای یاد بگیری که خدا کیو دوست داره این دونه دونه که دارن میگردن اینا به ما گفتن ما میگیم من بلد نیستم اونا میگن کننده و ما نیست. نیستیم حالا قسم میخورم هرچی میخواد اما اونایی که کننده میگه تصویر میگردی دونه دونه اسمارو میبری خدای حسنو بیاموز خدای حسینو بیاموز خدای, خدای, خدای, خدای محمد بعضی از اسماس که کلید رمز و نشبه تا میگی خدا خدایا می یا مثلا فلان رو بیامورد بینید حقیقی عشق <تصدق> داد. اولیاء خدا دوستاشونو سهرها پیدا میکنن افم طرفو رو که برد عشق, عشق جاری جار جار شد میفهم خدا اینو دوست داره امیدی چیزو جو... تا هم شروع کنی دعا کردن نگوید اللہ و مغفل سعید و فلانی تا چهار تا که معروف هم و نمیدونم مرده و منبری و فرمانده و اینا همهش تو اینا نباش با درگیرم دعا اولیان خدا گومن من که گومن یا الان یه شبت هم باخت نده یه شبت شب خسته, خسته, خسته, خسته, خسته, خسته, خسته خسته خدا حفظ کنه حاجی رو یه شب گفتم چه حاجی سری شب دیدمش گفتم من شب خیلی مریضم تب و لرز دارم در بودم چیکار کنم که همی جوری بیا ارک به تو نمیگه اما هرم خیلی مهمه فرمود که عددت کامل بشه تلکه, تلکه اشارته کامله حتی تو خود ما رمز اون آیات رو بردم بخوی مهمه این حرفی میذارم. آیات میگه که قاضی مریضوری نگیرید. اما اگه بتونید بجرید بهترینه که این سیروز کامل نمیکنه. توی ده شب هر شب یه چیزی تو میاد. اگه ماشین میخواه یه شب یه تایره شده تایره شده یه شب فرمون بیشم شده یه شب شیشه ها شده یه شب نهی خلاصی یه سکم میمونه و از اون کمال میمونه خدای به حق ازززهره سلام الله علیه و قسم از این مرگ ما رو شهادت رقم نزد عمر ما رو عبادت رقم نزد مرگ ما رو و مقدمات مرگ ما را آغاز راحتی مقرامه مغفرت تو بعد از مرد و عفت تو موی حساب روزی مقرامه همه ی حق داران ما مرده و زنده همشون رو بخشو بیامه الهی فلنجل همد و بدن <تصفيق> و سر یزید و ولا یبید ولا يذ الى اي بلغل امد ابدا ما ابدا دائما سرمدي يزيد بلا امی جیب المضر را اضافه یا جیب زو، امی جیب المضر را با ش اما یا جیب اما جیب ويا كشف السوق العيب فاطمه تلا ابيها وبالها وبديا وسر المزدوده الخيا يا الله